آیا تو در مورد حکومت حخامنشیان و وضعیت ایران در آن زمان اطلاعی دادی؟ بله می‌دانم که حخامنشیان 2500 سال پیش بر ایران حکومت می کردند معروفترین پادشاه آن دوره است در زمان او پست به شیوه امروزی رایج بوده است چگونه؟ میدانی که ایران در زمان حامنشیان بسیار بزرگتر از ایران امروز بوده است پس برای ارسال نامه ها و بسته ها شبکه پستی ایجاد کرده بودند؟ بله، مهمتر از همه نامه های اداری و حکومتی بود؟ تازه فهمیدم درباره چه چیزی می خواهی صحبت کنی؟ می خواهی راههای ایران حرف بزنید؟ بله، مهمترین و معروفترین راه باستانی ایران جاده شاهی نام دارد. آیا این جاده مخصوص پادشاهان حخامنشی بوده است؟ نه، شاید به این دلیل به آن جاده شاهی می گفتند که این جاده به فرمان کوروش و در زمان حکومت وی ساخته شده است. طول این جاده 2400 کیلومتر بوده است. این راه چقدر طولانی بوده. البته تعجبی ندارد چون ایران در آن زمان بسیار بزرگ بوده است. بله، این راه یکی از بندرهای یونان را به شهر سارد در ایران متصل می کرده است.